تن درستی یازدن پناه با <تصفيق> دیر زدنش نی شد با یا تاهم ویری او اثراتشش شد چید هچو اینکه یوش دزای من اینکه او شد نانو اینکه یوش مزای خشترم چو آیم در گوبیان ددت وستاره تندار و سیدیر زوشنی عویق رنکت اشوه داری از دان مینوان از دان گیتیان هفتم شاست بندان میزد روشن همه برساد این دودمان شاد باد آفریم باد همه در کسان را دین شاد باد ای دون باد خواهان باد اون مز خدا را همه انجمن را تندرستی درستی نیک نامی، تندرستی زندگانی تندرستی ای فراخ روزی، تندرستی شادی و رامشنی تندرستی تمام بهدینان و انسانهای خوب زندگانی دراز باد، شاد باد، ایدون باد بر سر ارزانیان بدار سال‌های بسیار روزهای بیشمار جاوید و پاینده دار صد هزاران هزار آفرین باد سال خجست باد روز فرخ باد ما فرخنده باد چندین سال چندین روز چندین ماه بسیار سال ارزانی دار یا زشنون یایش رادی و زور و برشنم عشوهی دار اوور همه و کار و کرفه ها تندرستی باد رادی باد نیکی باد خوبی باد ایدون باد ای ترج باد فعی از دانم شاس پندان کام باد عشم و هو و هیشتم استی اوش استی اوشتا و همایی حید عشای و هیشتایی عشم